بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله وأستنوا فسيح جنانه وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج كما قال تعالى فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الآية إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلق الطريقة وليس معه سلاح وعلم بدان قفتين ان كلمية بدان را محمد بن الوهاب در كتابها يتوشيديش زياد تكرار ميكونه اقتدائي بفرمان ودستور خضابان در قرآن بفيرانبرش تعلم أنه لا إله إلا الله فعلم علمه Ин ниас би илм доред, илм таухид, ниас би илм доред, илм худжта, илм далил, илм мадрака, илм султана, султана далил, султана мадрак, инки мо рубенат ва худа ва 하다ят бошим, барои амолимон мадрак доште бошим, мадракмон гил ва qal набоше, мадракмон далил аз куран ва суннат боше, чун суннат 하다ятгар ба суи таухид ва ما سنت رسول الله رو یاد میگریم که بر سنت مصطفى صل الله علیه وسلم باشیم ما سنت پیانبر رو صل الله علیه وسلم یاد نمیگریم که مقلد باشیم ما گفتیم در عقیده چیزی باسم تقلید نیست تقلید در عقیده حرام است اگر تقلید در عقیده مجوزش بود برای ابو جهلن باید مجوز بود برای ابو الهب باب اب اب اب باب ب ب ب ب ب ب ب بر والدین رسول الله صلی الله علیه و سلام نیست همون صحابیه که اومد گفت که پدرم کجاست گفت در جهنم و ناراحت شد گفت که بهش بگو که والدین منم پدر منم در جهنمه توحید با کسی شوخی نداره توحید فرزند پیانبره با فرزند پیانبرم رحم میکنه نوح علیه السلام ان ابنی من اهلی نه فرزنده نیست خداوند بهش میگه توحید نگاه نمیکنه که فرزندت بگه من تابع پدرمم نگاه نمی‌کنه فرزند بگه این پدرم ابراهیمه هازر اجازه اش آذر میگه نه دشمن خدا اصلا میاد ان شاء الله در زمن بعث اشاره خواهد میکرد درش تخلیل درستی است که بگه شخص من تخلیل میکنم در توحید تخلیل نیست توحید را باید یاد گرفت توحید را باید با دلیل یاد گرفت توحید را باید با مدرک یاد گرفت اگر ما توحید را با مدرک یاد نگیریم حال ما با حال منافقین و حال کفار و مشرکین چه فرقی میکنه چنان خداوند дарбории қалб масалан қалби яҳуд мегӯя ва қалубуна ғулф қалбимон қулм пе баста шудааст афала ятадбарӯналқуръон ам ала қлубин ақфалуҳа ҳаволи мушрикин ва мунафиқин қалбишон фулм пе қулл бастааст чаро чун нигоҳ бейонат ва далаил ва бароҳин намекунанд бурҳони султон султон-и далил бурҳони далил ҳужжати мадрак нигоҳ бе мадрак аз қоли ходованд خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاته على حركة مخاطب الشيء باترين جيزا محدثات دار دينه وباترين راه راه في انبران خدوان ده وخير الهدي ودروته خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بس بدان أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء خدوان في انبره نفرس إلا إنك أم في انبر داشته اعدایی داشته کسانی که با آنها ستیز کنند بجنگن پیامبری نبوده این از کجا آورد؟ پیامبری نبوده مگر اینکه دشمنی داشته باشه دشمنانی که با آنها مبارزه و ستیز بکنن و بجنگن این گفته امام محمد ابن عبدالوحاب بر گرفته شده از فر بوده خداابده ووكذلك جعلنا لكلبيين حرف پامبري هرجلك هر دوار عموومید ناللهجی بحث خودش دارهبلخ ث عموه پامبران چین بودن. پامبری نبوده اللا كوكذلك جعلنا لكل نبيعددواً شياقين الإنسول مگر اینکه دشمني از انز و جن داشته باشه. باید کسی باه دشمانی بکنه سفز بکنه. این نیست که بگی من دعوت میدم کسی سر معبرم نشه کسی جلو بر راهم ناد، کسی مانع امنشه نه دعوت باید کسی بیاد جلوبت بگیره مانعت بشه مخالفتش ابراز بکنه یا با زبان یا با زور بازه مخالفینی داره این دعوت و اگر مخالفی اومدن این اینجا بدان که الان داری کاری انجام میدی اینجا راهت راه انبیا هست اگر کسی که بقل بر جاده جلوبت اصوال کردن و گفتن بفرما و همه چیز فراهم کردن و همه دست شدن اینجا که دیگه مخالفتی نیست نیست دشمنی نیست گمراها را چوری میبینین مردم دست بوسشونن پا بوسشونن مریدشونن بیعت میگیرن از مردم کسی مخالفت نمی کنه جلو راهشون بازه برای زیارتی برن هر کاری بخوام بکنن کسی جلوشو نمیگیره هیچ کس جلوشو نمیگیره با آسودگی و آسودگی خاطر کارشون انجام میدن چون شیاطین جن و انس کاری باهونا ندارن راه رو با مردم باز کردن و آزاد کردن هزار گناه انجام بدن بیا میگه رو بخشیده من برات دعا میکنم اعتقاد داره که با یک استغفار اون و اون شیخ و اون كل گناهانش بخشیده میشه چون مستجاب الدعاء از مشصبه الدعوه است این حال اونها است شیطان خیال اسراحت آسوده است هر معصیت ما مردم انجام بدن، اون پیرها دعای استغفار و مغفرت میکنن براش بس دعوت حق باید مانعینی داشته باشن که جلوش بیسن اینجا گفت وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الانس والجن شياطین انسجن شیطان اختلاف شده در این که شیطان مصدرش از چی از اسشي چی گرفته شده؟ بعضی‌ها گفتن و مشهور در کتاب الوراث اینه که شیطان از شفنه اومده اذا بعدا چیزی که مبتعد شده دور شده دور شده از رحمت الهی است. از خداوند شفنه ابتعد و بعدا دور شد. خداوند دورش کرد. هر کسی از خدا دور شده شیطانه. و بعضی‌ها گفتن از شیطنت. حالا هر کدوم از یک مصدری ورده مشهور از بُعده. شیطان از حق از خیر بعید از خوبی‌ها اس. کسی که دوره دور از حقیقت دور از خیر و خوبی این شیطانه و ما بدونیم اگر خداوند دشمنانی را گذاشته برای ما از جن و انس این دشمنان را گذاشته خداوند برای اینکه تکلیف ما محق بخوره ما بنده مکلفیم مختاریم اختیار ما محق بخوره اینکه ما خدا را با حق و حقیقت بپرستیم اگر ما با ما نجنگن اگر با ما مبارزه نشه اگر که جلوه من نیسته کی میتونه؟ کی متوجه این میشه که واقعا بر حق ایستاده و دلیلش حقه و برهانش حقه همیشن مقلط همیشن بر یک دین و بر یک دیانتو بر یک اندیشه خداوند چه وقتی این رو آزاد بسازه که بیان با اون براهینشون ادله‌شون ادله ادلش شیطانیشون با مکرشون حیلشون نیرنگشون بیان دلایل و برهان عقلیشون بیارن که خداوند اونجا اختیار ما رو محک بزنه که آیا به حق و حقیقت به وحی خدا برمیگردیم به اون دلایل خودش برمیگردیم یا نه تابع هوا و هوسمون میشیم تابع قیل و قال بشیم اینو اون گفته خدا عدلله را فرستاد پیان بران را فراد ۲ زار پیان بر اومد پیان بر خدا رسص صلی الله عليه وصلا اومد سیننش سپر کرد اومد دعوت به قرآن داد این قرآن میگه فرستاده شد که ما تقلید بکنیم خیر فرستاده شد تا اینکه ما محک زده بشیم ابتلا بشیم امتحان بشیم که آیا دنبال مدرکیم آیا دنبال حققی می یا نه یا میخوام خود راحت بکنیم و بگییم پیو فلانی گفته ما میگییم ن کنیدید همه اینها همه اینها بحته که ما میگییم بحث تقلید رو می کنیمیم یا اتбаъро мекунем аз Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам hamash bahs ilmi hamon e'lami ki darat takror mikonad va alam va alam az ebtedoi kitob goft in hamon tavsiyye khohoda ta'ala be rasululloh sollallohu alaihi wa sallam miga fa'lam annahu la ilaha illalloh min ilmi mo bad don bala ilmi bashujur il bashim il دشمنان خدا و دین خدا باشه اگر جلوه دشمنان خدا با عل نیستی مردم گمراه میشن راه باطل باز میشه پیروانه اونها زیاد میشن مردم جهنمی میشن خالد مخلط میشن در جهنم کجاست ای بنده مؤمن رحمت کجاست ای بنده مؤمن مهرت کجاست ای بنده مؤمن لطفت لطفت کجا رفت نمیخواید پدر و مادرت نجات بدید نمیخوای برادرت نجات بدی کجا رفتون شفقتت مهربانی است نسبت به دوست و خیشاوندت چرا نمیخوای اونها را نجات بدی از عذاب خداوند اگر اونها خالد مخلد در جهنم شدن جواب خدا را چی خواهی داد خداوند مکلفمون ساخته که ره رو راه راه پیامبر باشیم و پیانبرم هادی بود و دعوتگر بود قل هذه سبیل ادعوا الى الله على بصیره انا ومن اتبعني ин роҳ ман ба суи даъват ба суи Худост ман ва пайроман ба басӣрат ба илм даъвате мо бояд раҳбари раҳтиам бар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бошед мо бояд мисли расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам меҳробон бошед нисбат ба халқи Худо на азоб на шамшир бар халқи Худо мо наим адӣ мардумро тасвир кунем мо наим адӣ мардумро ҷаҳаннамӣ кунем мо адӣ мардумро наҷот дидем аз азоби Худо ба хотири ҳам ин Худобон موسى وهارون وفرسد فرعون گفت فقول له قولا لينا ونرمي المؤمنون هينون لينون مؤمن نرمي وابتسامتك في وجه اخيك لك بها صدقه لبخنده صدقات ونرمي بو بود باشه دعوتت حرفت سخنت دعوت با تندی نیست با غلظت نیست دعوت با نیکیه ونرمی تو نمیما دي كه مردو و تكير بكني جهنمي بكني تو مسئول حساب وكتاب مردم نيستي تو خازن جهنم نيستي مردو رو مخلد در جهنم بكني خودتو بهشتي بكني کی میتونه بفهمه که بهشتی هست یا نیست کسی از ما میتونه بر خودش حق بده که من بهشتی هم فلانی جهنمیه کسی هی رو مردم حق بده بله ما رو اعمال و رو افعال حق میدیم نظر اشخاص بر اشخاص بعدت قيام حجته بيان محجته بعدت اتمام حجته بعدت دليل وبرهان بل بر افعال بيني ميجي فلان فعل شركه بلي بر اشخاص لا ما قبلا در جواب السفيرون بحثت هذه ما گفتين همون تو که شيخ لساني متني رحمه الله ميجي ما بر یک فعل حكم دين بلي بر فاعلش نه چنان اشخاصي که در بادیه هستن شاید حرام خدا را استحلال بکنن حرام بکنن شرک در طاعته ولی چون حق بهشون نرسیده ما تفیرشون نمی کنیم عذره به جهله کسانی شاید معذور بشن به خاطر جهلشون جهالتشون فعلش شرکه ولی خودش مشرک نیست این مسئله را رو... الان شاید بازم دوباره خواهد اومد چون مسئله خیلی مسئله تکراره و در زمن آیات باید بهش بپردازیم و گفتیم از este... تکرار خسته نبای تکرار ثبات را میاره یک غنچه یک درخت اگر هی پی در پی بهش آب ندید نمی ایسته جلوه باید استقامت نمی کنه می سوزه اون درخت خوش میشه. شه باید آبیاریش کرد باید هی آب داد آب داد آب داد که آراسته بی ایسته محکم بی ایسته در مقابل باز و توفان بی هیچ درختی نمی استقامت بکنه اگر آبیاری نشه زیرش خاک میشه خاک می میشه. خاکی که آبرووشنیاد خشک میشهست خوش میشه و به راحتی درخت از درخ اونجا در کنده میشه. حالا و قدللك که جعلل ل کل نبیین عدوون شاططین انسی و بله دشم... دشمن انسان هم جن هم انسی خیلی جاها هست دشمن انسان خود انسانه شاید پدرش باشه شاید پسرش باشه فرزندش باشه دشمنشه. دشمن انسانه ولی انسان مومن نه از اون دشمن جنش باید بترسه نه از دشمن انسش نباید ترسی در قلب مومن نباید از خلق خدا خوف بیاد چون خدا را داره کسی بر خدا توقل میکنه اعتماد میکنه نباید از خلق خدا بترسه چرا؟ علیس الله و بکافن عبده. عبده خدا کافی در عبودیت و خدا کافی در رهوبیتش خدا کافی در اون دعایی که می‌کنی به کافی کافیه غیر از خدا به درد نمیخوره فقط خدا کافیه مگر خدا کافی نیست اگر خدا کافی پس چرا در غیر خدا را می‌ذنی الیس الله بکاف عبدا خدا کافی در ربوبیت است اگر خدا داری که رزاقه خالقه مدبره چرا از غیر خدا می‌ترسی اگر به اون خدایی که قادر قبول داری چرا از غیر خدا می‌ترسی از خلق خدا نترس این قدرت رو خدا بهمون بهم میده ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا نصرت من، انبرانمون وكثاني كيوان اوردن نصرت خدا است. نتاست خدا باشماست ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. نتاست قامگينا منجی خدا شما فرشتگان را میفرستیم تتنزل عليهم الملائكه ني تتنزل با تکرار و زیاد خداوند فرشتگان خودش را برای نصرت شما خواهد فرستاد سربازان خودش را خواهد فرستاد برای نصرت شما چنان چه شد؟ در جنگ بعد میگه نشد میگه صحابی نمی میدید میدیدم که سری در هوا میرفت میگه نمیدیدن صحاب شخصی بر روی اسب یهو میدید سرش رو تنش نیست میگه نشد جند خدا بودن سربازان خدا بودن ای مومن نترد خدا میگه من باحتم با قدرتم و فرشتگان منم. برای نصرت شما خواهم فرستاد به داد شما فرشتگان خداوند به داد ما هم خواهند اومد پس انسان نباید بترسه و نباید انسان فریب قیلقال بخوره فریب زیبایی سخن یک فرد یا عشق یک عالمی یا داعیهی از دعوتگران باطل فریب اون فریب خوره اون بشه ما امت درست احسا درس احساسات داریم درست مهربانیم درست لطف قرب ما هست ولی کودن نیستی مؤمن باید زیرک باشه در دینش و این زیرکی بعد از علم میاد نبا نبا نباید یک مؤمن فریب وسوسه های شیطانی بخوره چنانچه اینجا اصلا ما داریم میگه باخت یکون ل اعداء التوحید علوم و وحجج شاید اون دشمن توحید با علم بیاد با حجت بیاد دلیل داشته باشه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم اونها نهخش به علمی که دارن اونهایی که دعوت توحید بهشون میاد خوشحالا نسبت به اون کتابی که دارن اون علمی که دارن اون شافعیش به علم خودش و اون عقیده اشعریت خودش مینازه اون حنفی به عقیده ماوردیتش اون مالکی به عقیده اشعریتش هر کدوم میبینن به عقیده خودش مینازه هر کدوم فکر میکنه این عقیده درش کوتاهی و کمی و سوسی نیست عقیده خودش رو واسخ و محکم میبینه خوشحالا خوشبینن به ادلهشون به براهینشون شما کتاب المغنی قاضی عبدالجبار رو بخونید اون چیزی که خودم دیدم و خودم ورق دارم والله قسم میخورم برید این کتاب را ورق بزنید کتاب در اعتقاد کتاب در دین کتاب دینی در عقیده نوشته شده صد صفحه ورق میزنید ده تا آیه توش دیده میبینید برید بخونید ورق بزنید ببینید در این چنجلدی که این قاضی عبدالجبار معتزلی نوشته ببینید چند تا که به استدلال کرده و چند از قول فلاسفه اش به استناد از قول ارسطو و سقراط اهل توحید را به عنوان مجسمه یاد میکنه اینا قائل این که خداوند جسمی چون, چون اهل توحید میگن خدا بر عرشه میگن اینا مجسمان قائلن به یک جسمی بالای عرش اهل توحید چینی خطاب میکنن دلیلشون چیه عرصه چون عرصه گفته خدا جسم نیست اینا هم میگن و لازمه جسم بودن اینه که خدا نبینه چون اگر بدینه خدا میشه جسم چون اگر خدا حرف بزنه خدا میشه جسد چون جسمی که سخن میگه جسمی کی میینه چون خدا جسد نیست نا رسو گفته پس هر کسی که بگه خدا میشنبه و سخم میگه مجسمه هست پس اهل توشید مجسمن اونایی که قبول دارن خدا بر اره یا مجسمند. دلیل و مدرک شی بود عقل گفته ارستو کو فی سقرات، عراستوس، فیسا اوورست و دیگرات از سران فلسفه مدرکشون که شد اینه. آیا به نظر شما اینها پیانبر بودن؟ اینها از طرف خدا فرستاده شدن که ما را به سوی بهش هدایت بکنن خیر واللهها شکنند. خدا پیانبران را برای نجات ما فرستاد نه اینها خوشحال نشید خوشحال نشید به این علمکان به این فرهیختگانتان به این فیلسوفانتان به این متکلمینتان خوشحال نشید اینها پیانبر نبودن اینها ره رو راه پیانبران خدا نبودن هر کسی دیدید بدون مدرکی از قال الله و قال رسوله صحبت میکنه بدونید که اهل باطله هرچند که سخرش را زیبا بسازه قشنگش بکنه بک سخنش را با زخرفه و با زیبایی دیواری بکنه بیاد کتابش رو رنگارنگ چاپ بکنه بیاد ادلهاشو در کروشه و رنگ قرمز و رنگ آبی و سبز بذاره گول رنگ رو نخورید فریب زیبایی را نخورید با آب طلا هم دراتون بنویسن درات نباید مدرک باشه مدرک اون سخنی هست که استوار بر پایه علم صحیح علم باحیه قران و سنت اون سخن محکم که باعث انسان محکم بگیره ترحتكم على البيضاء بروشني روشنای رهاتون کردم بر سفیدی رهاتون کردم لیل و ها کنه شبش مش روزه شبش مثل روزه قران و سنت علیکم بسنتی و سنت خلفاء من بعد عضوا عليها بالنوال این که بعد انسان صف تو محکم بکشد عضوا عليها بالواجب قران و سنت هر انسان باید شخص تو صف تو صف این دلیل مدرکه ینی که انسان رو نجات میده و عطاسون الله جميعا ولا تفرقوا یعنی این به قران و سنت راه نجات إن صراط مستقیم و هذا صراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل راهای بیگانه رو نگیرید این راه مستقيمة این عطاسون به الله ولا تفرقوا تفرقناکونی یعنی تابع فرقاهایی که اومدن با قول خودشون اندیشه خودشون فكر خودشون فلسفه خودشون ما را گمراه بکنن تابع اونها طابع شیمشیم تابع قران و سنت باید ما بر دین خدا که هست این فاقم موجه کل دینی مائل باش و جای به قیما محکم مستوار جای يحيان یحیا می خود الكتابه بقوه بقوات بغیر مائل از اصحاب انحراف جو حنیف باش مثل ابراهیم از اهل معقیتو اهل بدعتو اهل شک دور باش راه مستقیم رؤي بيقول ان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ان رؤاه بيغانه رؤاه كونيد عرفت ذلك وعرفت ان الطريقه إلى الله الى الله لابد له من اعداء قاعدين له قاعدين عليه اهل اهل فصاحه وعلم وحجج فعليك أن تعلم من دين الله ما يصير صلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين اقادونستي كدشمناني لراي توحيد هات الجن والانس باید دنبال چی باشی علم علم کی اسلحت باشه مؤمنی که دنبال علم نیست چطور میخواد با شرک و اهل شرک بجنگه چطور میخواد بره به نبرد با شیاطین جن و انس این توکل نه توکل طرف میگه من می‌خوام برم به جهاد می‌گم می‌خوام برام با داعش بجنگم با فلانی بجنگم با القاعده جنگم میخواد بره به جنگ علم شرعی رو یاد نگرفته توحید رو نمی‌شناسه میگه میرم می‌خوام با طاغوت بجنگم کدام طاغوت طاغوت رو چی فهمیدی میگه طاغوت عربستانه طاغوت حکام کافرن تاغوت را فقط خلاصه کرده فقط در تکفرماها و حکام خیر تاغوت هر کسی طغیان بکنه هر کسی که در اون اسراف و زیاده روی بشه در اطاعت از اون از اون معبود از اون مطاع از اون که فرستاده بشه اون فرشته که فرستاده بشه همینم تاغوت هر کسی چه راضی باشه چه راضی نباشه اون قبر تاغوته اون تمائم تاوته همه اینا تاغوتن اون قسم به غیر خدا تاغوته تاغوت طاقود هر چیزی که درش طغیان و بیاد و لقد بعضثمة في كلعممة الررسو أنعض الله شتتنب الطاقوت. هر چیزی که در تغان و زیاده روی است اصراب بعد اطاعت از الشطان ما باید ازش برهیز میکنیم. این دعوت بیا بوده. باید ما تويد را یاد بگیریم. این يد هست این تحيد با یاد بگیریم. ن اینکه بریم دا جنگ با دشمن صلاح علم داشته باشیم. نمیشه بدون این صلاح این اصلح إن علم جنگيل.دي در زمان الربرنا خطاب از يايم بلند شدن بدون توشه ووكبارو. گفتن ما توکل بر خدا میکنیم خدا گفت ما من يتوكل على الله فهو حسبه یعنی اعتماد دار خدا بکن خدا کافی است عمرون خطاب بری میگه بری میگه انت متوکلون شما متوکلید لا متوکل متوکل اون کسیه که اتخاذ اسباب میکنه ای عباد الله تداوا ولا لا تداوا بالحرام دوم ول درو باشی حرام این توکل که اسباب را بگیری نه اینکه اسباب نماز سبب دخول بهشته، باید نماز رو بگیری، باید روزه رو, بخ... روز رو بگیری. میگه میشه بدون نماز و روزه انسان وارد بهشت بشه؟ این توکله. توکل است. فقط این نیست که ما فکر بکنیم توکل فقط در جنبه تصوف اونهایی که گفتن در مسجد میشینیم. خیر. همون که ارجاء در اعمال مامیات میاد مرجعی میشیم. عمل رو از ایمان نمیدونیم. همون هم ما در توکل میفتیم در اون عمل مشرکین میشینیم سر که روزی خدا میفرسته. خیر. اعقلها ثم توكل اعقلها او صحابي قف من شطرم و رهام ميكونام خدا بخاد نقاش مداره رسوسه جواب اشي دار اعقلها خد باسباب اول اسباب را بگير اول ببندش اول سبب را بگير باتت باكولكم بر خدا ثم توكل اعقلها ثم توكل نيجه انسان همینجا بشینه و بعد بیاد روزی از آسمان بیاد اون معجزه بود که برای مریم پیش اومد برای عیسی و, و حواری حواریش اومده بود قرار بر این نیست که این معجزه تکرار بشه و ما منتظر معجزه باشیم زن و بچمون رها بکنیم بگیم روزی رو خدا میرسونه پس کسانی هم که دنبال علم نمیرن میگن همین قد که خوندیم کافیه دنبال توشید نمیرن دنبال علم عقیده اینها متوکلن متوکلن در دعوت به توحید شما می‌خوای دعوت به توحید بدی و چیزی از توحید نمی‌دونی، چیزی از شرک نمی‌دونی. باید انواع توحید، باید انواع شرک، اسباب و زرعاش همش رو یاد بگیری. این صلاح مؤمنه. صلاح بس مؤمن شد علم. ما تنها با دشمنان خدا و دشمنان دین خدا تنها با اسلحه نمیجنگیم. اول با رسول الله صلی الله علیه و سلام در مکه با دست رو یکی از مشرکین بلند نکردن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ده كثيرو کوتک زدن، سر رو زدن. میتونن یا نمیدونن. میتونن ترور بکنن؟ عملیات انتحاری انجام بدن؟ جرأتش رو نداشتن؟ عرضش رو نداشتن؟ کسی جرأت داره بگه؟ اون بلال حبشی که عذاب می‌دید، جرأتش نداشت ابو جره، ابو جهر بیاد از بهش خنجر بزنه، تحمل میکنه اون عذاب سخت و درناک. اون سنگ‌های آتشین روی شونه‌ش و دوشش می‌ذارن، کمرش می‌ذارن. نمی‌تونه از پس بیاد. ابو جعر خنجرده واللهی که جرعتش داشت واللهی که قدرتش رو داشت ارزه رو داشت ولی نکرد چون ما خائن نیستیم چون ما اهل غدر نیستیم منافقی هم که اصحاب غدر هم ادعه تو منخان و ادعه آهد غدر اونها اصحاب غدر ما اصحاب غدر نیستیم ما پیر و پیر رو نمی کشیم ما بچه رو نمی کشیم ما مردم روبرو می جنگیم مردم روبرو میدیم. توی سرداب نمیشینیم توی چهه نمیشینیم فی مسجد میشینیم دعوتمون میدیم دسته با اونم ب بندم دعوتمون رو میدیدیم. هر جابدیم دعوتمونونه همین عوض نمیشه. دعوت گریم این دعوتمونه چیز پنهان ندارید چیز کتانی ندارین. با کتی همرو رو درواسی نداریم دعوتمون اینه. هزار تا تهمت و بچسبم به ما بزنن. به ما بگن جیره ها به ما بگن جاسوس به ما بگن هر چیز بخوام بزنن مگر به اوم پیشین و پیان پیشین این تهمت نزدن. اونها کاری جزئ این نداشتن. که مردم را از دین چینین برانن اینها بود دشمنیشون فرحو به ما عندهم من العلم و نهادون افتخار میکردن با علمشون میومدن مسخره میکردن هیچ میکردن بیان بران خدا ساحر جادوگر فکر میکردن با همین کار جلوه دعوت را بگیرن خیلی ها هستن چینین فقط تخریب شخصیت بردن فقط پاپوش درست کردن بلدن صفحه سازی بلدن پشت یک که دعوت به توحید میده پشت سر علما و علم من اینجا نیمد از خودم دفاع بکنم اهل علم شخفوزان رو یاد کردین بنباز ابن عطمین البانی اینها سپران اسلام بودن و هستن اهل علم برکت با علماتونه با بزرگانتونه بزرگان و نشناختی تو میشی اهل اصاغر تو میری دنبال این دو داعیه و اون داعیه این طرفت و اون طرفت میبرن و نسبت به اهل علم بدبینت میکنن چقدر بدبینن به آلبانی اسم و آلبانی میاد مثل اینکه موها از بدنش داری میکنی آلبانی مرجعیه آلبانی جهمیه آلبانی که از عقیده نفهمیده آلبانی که فقه نداره آلبانی که نمیدونم درباری بوده نمیدونم آلبانی که نمیدونم چیز از حدیث بلد نبوده آلبانی شیخ و عالمی نداشته اصادی نداشته بل شما بیاید این چیزی مبارزه بکنید به اهل علم فکر کردید. با این کراتون جلوه مردم را بگیرید جلوه حق را بگیرید و حقیقت را بگیرید والله حقیقت روشنه آل هم نباشه بخاری هم نباشه حقیقت واضح و روشنه خداوند در دینش نیازی نداشت که بخاری باشه یا مسلم باشه خداوند برای حق اشخاص افراد را مسخر ساخته که دین را برپا بدارن محتاج منم که منجا نشستم نیست خداوند هر جا و هر کسی که بخواهد مسخر میکنه برای توجیه مردم برای دعوت مردم هر چقدر ما میگم فتنس بکنیم و بجنگیم با اهل علم هر چقدر بهتان بهشون بزنیم میمونه حق حق اونها اهل علمند انما يحشى الله من عباده العلماء اهل علما که خدامیترسن اونها حلال و حرام بلدن وقتی خوارج در زمان امام محمد و قبل از امام محمد امان وقتی که امام محمد دعا معمون و معتصم اونها به ما چیزی گفتن وقتی گفت خروج نکنید در علی این حاکم فاجر این از عقیده اهل سنت است که نباید خروج بشه در علی شیخان گفتن؟, گفتن امام محمد و امثالش علمای حیض و نفاسا اینا فقط فتوا بدن به زن که خون بیاد نماز بخونن و نخونن اصحاب حیض و نفاس از باب تصغیر از باب مسخره استهزاء هم حرفی چیزی که بلادرنگ شده صد بن باز و ابن عثیمین و امثالش کسانی که به قول معروف جهادی بودن به قول خودش نه اومدم اینجا بر علیه هی صحبت بکنم ولی نها بکنید بحث من بحث چیه؟ بحث نها بکنید شبهه شیطانی که به انسان میاد که دلیل برهان روش نیست فقط زن و گمانه فقط گمانه علماء عربستان را شما برید سایت های من قبلا گفتم تو کفرانس فرانس شما برید سایت توحید و جهاد رو بخونید امثال مقالات ترتوسی و ذرقاوی و نمیدونم مقدسی و اینا را بخونید قبول صاحب زرقاوی بیرید مقالاتش رو بخونید در تکفیر بنباز و ابن عکمین و البانی شما برید بخونید اینا چیه؟ دلیل مدرکی دارم به نظر شما انشاءالله بهش خواهیم برداخت جای خودش وقتی که میان برچسب بیزنن که اینها مرجعن با حکام و خوارجن با دعات چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که اینها عمل رو از ایمان نمیدونن اینها نمیدونن فلانن و اینا دربارین میگن که با زمانشون گفتن تفسیرشون هم کردن و به عنوان یادشون کردن دلیل و مدرکی آیا دارم بر حرفشون دلیل و مدرکش ان شاء خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم تو بحث تکفیر تو بحث شرح نواقض اسلام محمد وهاب و قبلا بحثش کردیم ما برامون اشخاص مهم نیست گفتیم من نیمدم اینجا گفتم از البانی دفاع بکنم از بیارم در البانی که مرجعی نبوده ادله بیارم که درباری نبوده من حاکم بر نه بهشت خدا نه بر جهنم خدا نه مالکم نه اون چیزی که برای ما مهمه ادله هست براه اینه. شما این که میاد تکفیر میکنید چه دلیل و برهانی ارائه کردید؟ جز عدله شیطانی و بهتان و سوء زن و سوء گمان چی ارائه دادید جز این؟ جز اتباع از ابو جهل و امثالش در ریشخند به اهل علم در تمسخور به اهل علم، در استهزا، در برچسب زدن، در صفحه سازی کردن میگه کار ابو جهل و امثالش جز این بود؟ جوز اینکه مردم را به علما بدبین بکنن خدا در قران میگه اهل علم اهل تقوا اهل ترس از خدا ما میگیم نه در باریان از خدا نمیترسن ما باید معیار هر را بدونیم در یک مسئله بحث از علم میشه میگه در این مسئله اختلاف هست مولوی فلان اینجوری گفته شیخ فلانی اینطوری گفته در توحید اختلاف نیست والله در توحید اختلاف نیست در عقیده اختلاف نیست در رؤیت خدا در روز قیامت اختلاف نیست در اینکه خدا بر عرش اختلاف نیست والله اختلاف نیست اختلاف بر این نیست خدا بر عرشه هر کسی که بیاد بگه اختلاف است اون شخص مبتدیه گمراهه اهل علم نیست اسمش نذرت اهل علم چون بعل سخنانی میگه چون علم خدا رو رد میکنه خدا میگد بر عرش مستوی الرحمن علی العرش استوا میگی غیر این استوا استولا این تصرفه این نمیدونم استولا چیره شدنه از کجا آوردی کی گفت چرا خدا گفت استولا چرا خدا گفت بر عرش فرا گرفت چرا چرا استوا معنی گفتن علماء کلام گفتن استوا یعنی علو و ارتفاع هم متکئ ابو العالیه و غیره گفتن این حقیقت اهل سنت قرآن و و محکم میگیرن اونچنان چه خدا خاصة. بكنن. بكنن. خودشون خواسته نه اینکه برن تحریفش بکنن تعبیرش بکنن با ادله ارسطو و سقراط یا با خودشون و خودشون و مقدمهم لربك عز وجل لا اقعدن لام صراطك المستقيم یعنی در راس در راس دشمنان دین خدا شیطانه ابلیس که گفت بر راه مستقیم میشیدم رسول الله صلی الله خطی میکشن کنار خط خطایی میکشن میگه این راه خداست و این راه شیطان بر هر در راهی نشسته اطرافیان را صدا میزنه فریاد میزنه بیاید به بی این راه وأن هذا صراطي مستقيما راه مستقيما يكيا قرآن الصنة توحيد دوتنا بشه شو الخضاء ضف يكره صراطا مستقيما وأن هذا, هذا صراطي مستقيما صراط مستقيما راه مستقيم توحيد بسوية خضاء يكيا دوتنا بشه ولا تتبع الصبر راهي شيطان بل زيادة راهي قم راهي زيادة ولكن إذا أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناتي فلا تخف أقل دليل ما أدرك برقرآن قرآ الصنة دريد ينتاس دشمنه میخواست فرعون باشه یا ابو جهل باشه از کسی نترس از قدرتی نترس همونطور که خدا به موسا و حارون گفت اینی معکم اسمع و ارا من با شما هستم میشنم و میبینم خدا و موسا و حارون بود با ذات خودش کنارش نیستاده بود یا وچی بود این معیت چنون معیتیه اسمع و ارا میبینم و میشنم اگر اگر معیت اینجا ذات خدا بود که دنیا نیاز نبود که دیگه من درسته. وقتی خدا با ذاتش بود دیگه نیاز به این نبود تکرار بود که در ایمانه خدا گفتیم هیچ وقت تکرار نداره خدا در حرفش اضافه نیست الحمدلله رب العالمین فراموش نکنید تکرار نیست الله یه چیزی رب یه چیز دیگه است یه چیز دیگه از اون گفت تکرار نیست تو سخن خداوند پس اینجا این معیت با خداوند اینجا تفسیر می‌شه هر چقدر ان شاءالله دوباره بهش خواهیم پرداخت به جای خودش خیلی از مسائل هست ببخشید من من پی میگم به میاد به جاش میاد چون حقیقتش یه یک متنی که ما میخونیم خیلی از مسائل به هم دیگه مرتبطه رد داره به همین من میگم که خواهد اومد یا همین گفت والا ان از قلمم نگفته چون میخوایم یعنی این متری میخوایم با تحقیق بخونیم یعنی با و تحقیق باشه اینکه فقط همین طور از این سخنان رد بشیم تعالی ولکن اذا اقبلت الى الله تعالی و اسغیت الى الله و فلا تخف ولا تحزن شو و نهم بتس چرا ان کید الشیطان کان ضعيفه چون مکر شیطان نیرنگ شیطان، نرنگ و براهین شیطان چیه؟ ضعیفه. انا عبادی نیست نک علیهم سلطان. نه سلطان قدرت داره جن بیاد تو تن ما، دین ما رو از ما بگیره نه. روز قیامت نمی‌تونی بگین من جن زده بودم، جن نذاش من موحد بشم. جن نذاش من نماز بکنم خیر، یک موحد اگر جنم تو بدنش بیاد، خدا قدرتی بهش داده که با اون قدرت جن رو نابود بکنه موحد با قدرت توحید. با قدرت توحید. قرآن جر رو نابود میکنه همونطور که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم جر رو نابود کرد تلس شد جادو شد یهودی اومد جادوش کرد رو کف دستان خودش ستاقور رو خوند قل قرد... حوالله حدق رو دم داد و بردنش کشید و فرمودن سوره های از قرآن بر من نازل شدن که غیر ممکنه تلس بی جادوی در مقابل اون مقاومت بکنه تلس جادو و جب رو نابود میکنه قرآن خدا دن این اعتقاده مؤمن باید بدونه بر یقین باشه چنان قدرتی داره که میتونه کمر شیطان رو خورد بکنه چنان قدرتی داره که جلو دشمنان دین خدا بیسته عدله و برهان و مدرک از قرآن از وحی خدا نه که فقط بگیم این آیه قرآن است بگیم الحمدلله را نه الحمدلله رب العالمین محفومی داره معنایی داره الف و لام الحمد معنا داره. الحمد خدا یعنی تمامی ستایش ها پروردگار از آن توست تمامی خیر و خوبی ها از توست و این شری که خلقت کردی ابلیسی که با صلوات من گذاشتی اسبابی هست برای که من قوی بشم این اسباب قوته نه از ما به ضعف نه از ما به هلاکت تو گذاشتی پروردگار را که من در دینم با بصیرت بشم تو را بهتر بشناسم از قدرتت بیشتر ببینم از عزتت از جبروتت بیشتر ببینم از لطفت بیشتر ببینم میخواد قوت ایمان و قوت قلب همون بده مؤمن هیچ وقت نه با ضعیف باشه نه در مقابل کید شیطان مگر شیطان نیرنگ شیطان ادله و براهین شیطانی کم بیاره کوتاهی بکنه وقتی کوتاهی است که دنبال علم نباشیم و ما کان لی علیکم من سلطان روز قیامت میگه ابلیس و ما کان لی علیکم من سلطان الا ادعوتکم فاستجبتم لی من دعوتتون دادم جلوی راهتون ایستادم شما هم راه رو به راه من شدی شما از من پیروی کردید میگم من زور داشتم سلطه داشتم رو تو نه شیطان روی ما سلطه نداره چیرگی نداره که بگیم فردا عز بیاریم نه بگیم زور اونها زیاد بود خیر زور, زور زور حق زور زور حقه زور زور دلیله اونی که زور داره اونی که قوت داره اونی که قدرت داره اونی که برازندگی داره پس درمان ني رنگ های شیطان علمه حجت به از قران و سنت من الموحدین يغلب الالف من علماء هؤلاء المشرکین یک فرد عمی اهل توحید یک عمی از اهل توحید هزار تن از اهل بدعات از اهل خرافات از اهل شطره شتت میده یک عمی من قبل اما مصاری زاد اون عمی که وقتی که اون شخصش قبوری اومد بهش گفت که خداوند گفته که شهدا زنده ان بعدش گفت که ادامه آیه را بخون ادامه آیه را که خون گفت که گفت یرزقون نگفت یرزقون اونا که رزق روزی نمی رسونن اونا خودشون محتاج رزقن چطور من از محتاج به طلبم من از اون که محتاج نیست بی نیازه عربه. می طلبم عرب میدونه مفهوم سخن خداوند در قرآن چیه میدونه معنای رزاق چیه چیه از اون رزاق می از اون غنی می نه از اون محتاج نه از اونی که خودش محتاج روزیه از اون کسی که فقیره به درگاه خدا این قوت توحیده یک عامی یک عامی که روخونی قرآن داره و معنای قرآن میدونه راحت میتونه با اون قرآن یک شخص مشرک را شکست بده نه یک شخص هزار تن هزار نفر از اون مشرکین از اهل شرک از اهل گمراهی شکست بده كما قال تعالی و این جندنا لهم الغالبون سربازان ما همیشه خداوند میگه چی؟ و له لهم الغالبون به حقیقت سربازان ما کیان همیشه اهل غلبه ان لهم الغالبون یعنی حقیقتا اونها هستن که غلبه کردن حقیقت نصرت اهل توحید از طرف خداوند و همیشه هم منصور بودن همیشه نصرت خدا با اونها بوده و همیشه هم اونها منصور بودن تتظل طائفه من امه الظاهريا للحق ظاهرا بر حق حق را میگن حقویی میکنن لا يضرهم من قذله هناك أهل خذلانا هناك بيمترس دارا هناك أهل جهل جهالاتا جمراها أهل بغاة أهل شركة هناك ذراري هم بهمونه من رسولة هم تكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اجتمعت الجن والإنس على أن يضروك بشي لا يضروك إلا بشي قد كتبه الله لك إذا خدا نقال نميتونان جن وإنس بهم جانبشان بتو ذراري برسولة خدا رجريات شمي ترسي أي موحي أنه عمي نداره. اون عامی ترسی نداره ولی که اون عامی علم داره با علمی جنگ وار. نه که بی اصلحه گفتین بی اصلحه چیه؟ متواکله بی اصلحه متواکله فجند الله همو الغالبون بالحج و با زبان و دلیل اهل حجت اهل علم پیروزن کما همو الغالبون بستیف وسترن همونطور که با شمشی پیروز بودن و هستن سربازان دین خدا پیروزن و پیروز خواهند بود و اینم الخوف و الموحد الذي يسلط الطريق ولا يتبع ترس تعتبر موحديه كي مخاط بجنگ بخواد بره به نبرد با باطل ولی اسلحه نداره باد انسان بتسه نه باد انسان مناظره طرف باشه نه تتمنى لقاء العدو که من میتونم بخاطر همین اهل سنت امام احمد و غیره پرهیز میدادند بر حذر میشوردند از اینکه ما با اهل باطل سخن به میام و با آنها مناظره بکنن حتی در مجالست با آنها ما پرهیز داده شدیم که بشیم هم خوب باشیم هم باشیم باید حذر باشیم. بترسی بس این که اونها در دلمون در قلبمون شبهه ایجاد بکنن. بله انسان انسان قلبش ضعیفه. موحدی که درایت به و سنت نداره راحت گمراه میشه. باید به ترتیب نور و روشنایی نداری که بخوای و اون تاریکی بجنگی. نور چی؟ قرآن و سنت. نور فهم درسته. حالا میاد انشاءالله در بعد بحث نور بیشتر خواهیم پرداخت. با که با ظلمات بجنگی. سبحانك الله وبحمدك و الله علی محمد